اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاآنا لولا کسانی که به دیدار ما امید ندارند گفتند چرا فرشتگانی بر ما نازل نشدند یا چرا پروردگار را نمی بینیم به راستی آنها درباری خود تکبر ورزیدند. اطوریان بزرگی کردند یوم يرون الملائكه تلا بشر يوم اذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا روزی که فرشتگان را ببینند در آن روز هیچ بشارتی برای مجرمان نخواهد بود بلکه روز مجازات و عذاب است و فرشتگان میگویند بهشت بر شما ممنوع است و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا و ما به هر گونه عملی که انجام داده اند می پردازیم. پس آن را چون قبار پراکنده در هوا قرار می دهیم اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا بهشتیان در آن روز جایگاهشان از همه بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا به یاد آور که آسمان با ابر ها شکافته شود و فرشتگان چنان که باید پی در پی فرود آورده شوند الملک یومئذ للرحمن يوما على الكافرين عسيرا فرمان روایی راستین و حقیقی در آن روز از آن خداوند رحمان است و آن روز روز سختی بر کافران خواهد بود. ویومی عدّ الضالّ معلّا يديهی یقول: يا, يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. به بیاد آباد روزی که ستم از حسرت دست خود را میگزد، میگوید: ای کاش من با رسول راهی برگزیده بودم. یا ویلتا لیتنی لم أتخذ فلانا خلیلا ای واي <بای> بر من ای كاش فلانی را دوست نمی گرفتم لقد أضلنی عن الذكر بعد إذ جاءنی وكان الشیطان للإنسان خذولا به راستی او مرا از ذکر گمراه ساخت بعد از آنکه به سوی من آمده بود و شیطان همواره انسان را تنها و خار می‌گذارد. و قال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. و پیامبر خدا گوید پروردگارا، بیگمان قوم من این قرآن را رها کردند. وكذلك جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فان گونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم و پروردگار تو برای راهنمایی و یاری تو کافی است وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتدناه ترتيلا و کسانی که کافر شدند گفتند چرا قرآن یکبار بر او نازل نمی شد اینگونه آن را بخش بخش نازل کردیم تا با آن قلب تو را استوار داریم و آن را آرام آرام و به تدریج بر تو بخانیم ولا یأتونك بمثل إلا جئناك بالحق واحسن تفسیرا و کافران هیچ اعتراض و مسالی برای تو نمی مگر آنکه برای تو حق و پاسخی نیش بیانتر می آوری. الَذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ شر أُلَأَكَ شَرُّ و وَأَضَلُّ سَبِيلًا کسانی که بر چهره‌هایشان به سوی جهنم محشور میشوند اینان بد جایگاهتر و گمراهتر هستند. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معهُ أخاهُ هارون و و براستی ما به موسی كتاب دادیم و برادرش هارون را همراه او مددکار او قرار دادیم. فَقُلْنَا اِذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا آنگاه گفتیم شما دو نفر سوی قومی که آیات ما را تکذیب کرده‌اند بروید پس آنها را به شدت هلاك و نابود کردیم و قوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیه و اعتدنا للظالمين عذاباً و قوم نوح را هنگامی که پیام بران را تگذیب کردند آنها را غرق کردیم و آنها را برای مردم نشانه و عبرت قرار دادیم. و برای ستمکاران عذاب دردناکی آماده کرده ایم و عادا و ثمود و اصحاب الرس و قرون بین ذالک کثیرا و همچنین عاد و ثمود و اصحاب رس و نست های بسیار را که بین آنها بودند هلاک کردیم وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا و برای هر یک از آنها مثلها زدیم و همگی آنها را سخت نابود کردیم ولقد أتوا على القية التي أطرت مطر الس افلم یکونو لا نشورا و به راستی آنها بر قریه ای که باران بلا بر آن باریده بود گذشتند آیا آن را نمیدیدند دیدند آری می دیدند. بلکه به قیامت و زنده شدن امید و ایمان ندارند وای کیت تخیدونونکه إلاهزون اقدر الذي مع اللهرسولله و هنگامی که تو را ببینند فقط تو را بریش خند و مسخره میگیرند و میگویند: آیا این همان کسی است که خداوند او را به پیام بری فرستاده است؟ إن كاد لا يبلنا عن آهتنا لولا أو صبرنا عليهها وسوف يعلمون ن حين يرون العذاب من أضل سبيلا اگر ما بر پرستش خدایانمان استقامت نمیکردیم نزدیک بود که ما را از پرستش آنها گمراه کند. و چون عذاب الهی را ببینند به زودی خواهند دانست چه کسی گمراه تر بوده است ارا من اتخذ هواه اف تكون علیه آیا دیدی کسی را که هوای نفس خود را معبود خود برگزیده است آیا تو می توانی بر او وکیل و نگهبان باشی ام تحسب ان أكثرهم یسمعون او یعقلون این هم الا کن بل هم اضل سبیلا آیا گمان می کنی بیشتر آنها میشنوند یا میفهمند آنها همچون چهار پایانی بیش نیستند بلکه اینان گمراه ترند الم ترائیلة ربك كيف مدظله ولو ش أ جعله ساكنا م جعلنا الشمس عليه دللة آیا ندیدی چگونه پروردد گارت را گسترانیده است و اگر میخوااست آن را ساکن قرار میداد پس خورشید را بر وجود آن دلیل قرار دادیم؟ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا سپس آن سایه را اندک, اندک به سوی خود باز میگیریم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا و او کسی است که شب را برای شما پوششی قرار داد و خواب را مایه آسایش و روز را هنگام برخواستن و جنبش قرار داد و هو الذی افسل الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من ما و او کسیست است که بادها را بشارت دهندگانی پیشها پیش رحمتش فرستاد و از آسمان آبی پاک نازل کردیم لنحیی به بلدتا میتا و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسی کثیرا. تا به آن سرزمین مرد زنده کنیم و آن را به چهار پایان و انسانهای بسیاری را که آفریده ایم بنوشانیم ولقد صرفناه بینهم اكثر الناس كفورا و ما آن آب باران را در میان آنها تقسیم کردیم تا متذکر شوند پس بیشتر مردم جز ناسپاسی را قبول نکردند وَلَوْ شئنا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ نَذِيرًا و آیات میخواستیم در هر قریه و دیاری بیم دهندگی میفرستادیم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا پس ای پیامبر از کافران اطاعت مکن ف به وسیله آن با آنها جهاد بزرگی بنما و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أوجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزخ وحجر محجورا. و او کسی است که دو دریا را به هم آمیخت. این گوارا و شیرین و آنشور تلخ است و در میان آن دو حائل و مانعی اوست وار قرار داد او هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربک و او کسی است که از آب انسانی را آفرید انگاه او را پیوند نسبی و سببی قرار داد و پروردگار تو توانا است. قایع من دون الله ما لا ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. و مشرکان بجای خداوند چیزی را می‌پرستند که نه به آنها سود می‌بخشد و به آنها زیانی میرساند و کافر پیوسته در برابر پروردگارش پشتیبان یکدیگر و یاور شیطان است و ما ارسلناک الا مبشرا نذیرا به ای پیامبر ما تو را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا بگو من در برابر تبلیغ آن هیچ گونه مزدی از شما نمی طلبم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند و توکل على الحیی الذی لا یموت و سبح بحمده و کفا بهی بذنوب عباده خبیرا و بر زنده ای که هرگز نمیمیرد میرد توکل کن و به ستایش و او تسبیح گوی و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا همان کسی که آسمان و زمین و آنچه را در میان آن دو است در شش روز آفرید سپس بر عرش قرار گرفت او خداوند رحمان است پس در باری او از کسی به پرس که آگاه است و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن قالوا لما تأمرنا وزادهم نفورا و هنگامی که به آنها گفته شود برای خداوند رحمان سجد کنید گویند رحمان چیست او را نمیشناسیم آیا برای چیزی که تو به ما فرمان می دهی سجده کنیم و بر نفرت و گریزشان شد تبارک الذی جعل فی السماء و جعل فیها سراجا و قمر پربرکت و بزرگوار است کسی که در آسمان برچ قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی قرار داد و هو الذی جعل اللیل و النهار لمن اراد ان او اراد شکوراه. و او همان کسی است که شب و روز را در پی یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا بخواهد گذاری کند و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و بندگان خاص رحمان کسانی هستند که با فروتنی و آرامش بر زمین راه میروند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب قرار دهند، به آنها سلام گویند وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِیَامًا وَكَسَانِی که شب را برای پروردگارشان سجد كنان و قیام کنان میگذرانند. گذرانند وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ كَانَ غَرَامًا و کسانی که میگویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف کن بی تردید عذابش سخت و پایدار است ساعت مستقرا و بی گمان آن جهنم بد قرارگاه و بد اقامتگاهی است والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما و کسانی که چون انفاق کنند اسراف نمینمایند و سختگیری نمیکنند و بین این دو روش اعتدال دارند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 و نفسی را که خداوند کشتنش را حرام کرده است جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند مجازات گناه خود را خواهد دید له و فيه مهانا. عذاب او در روز قیامت مضاعف می گردد. و با خاری و زلّت در انجام دان خواهد ماند. إلا من تاب و آمن و عمل صالح فأولئك اللَّهُ يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله الرحيم مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد پس اینانند که خداوند بدیهایشان را به نیکیها مبدل می و خداوند آمرزندی مهربان است و من تاب و عمل صالحا فإنهو يتوب إلى الله متابا و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد پس بیگمان او چنان که باید به سوی خداوند بازگشت می کند لا لَا الزور الزُّورَ مروا باللغو بِاللَّغْوِ مر كراما و کسانی که شهادت دروغ نمیدهند، و چون بر کار لغ و بیهوده بگذرند بزرگوارانه از آن می‌گذرند والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا عليها صم و عميانا. و کسانی که چون به آیات پروردگارشان پند داده شدند اند کر و کور بر روی آن نمی افتند وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْنَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّتَ اَحْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا و کسانی که میگویند پروردگارا از همسران و فرزندانمان من مایه روشنی چشم به ما عطا فرما و ما را برای پرهیز گاران پیش قرار بده اولائك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها و وسلاما آری اینان به خاطر صبری که کرده اند درجات عالی بهشت به آنها پاداش داده میشود. و در آن با تهیت و سلام استقبال می شوند مستقر و مقاما. در آن جاودان خواهند ماند چه نیکو قرارگاه و نیکو اقامتگاهی است قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لذا ما ای پیامبر بگو پروردگار به شما اعتنایی ندارد اگر دعای شما نباشد به راستی شما حق را تکذیب کردید پس به زودی کیفرش گردنگیر و ملازمتان خواهد بود بسم الله الرحمن الرحیم قاسیم تا سین مین تلک آیات الكتاب المبين این آیات کتاب روشن است لعلک باخعون نفسک الا یکونو مؤمنین گوی می از شدت قم و اندوه اینکه آنها ایمان نمیآورند خود را هلاک کنی ان شَاءَ من اگر بخواهیم از آسمان بر آنها نشانه ای نازل میکنیم که گردنهایشان در برابر آن تسلیم گردد و ما و هیچ پنده تازه ای از سوی خداوند رحمان برای آنها نمی آید مگر اینکه از آن رو گردان هستند فقد كذبوا فسیأتیهم انباؤ ما كانوا به یستهزئون به راستی آنها تکذیب کردند پس به زودی اخبار آنچه را که به آن استهزا و تمسخر کردند به آنها خواهد رسید اولم الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج آیا به زمین دنی اند که چقدر از هر گونه گیاهان نیکو و پر ارزش در آن رویانی ده این؟, این فی ذالک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین بیگمان در این نشانه بزرگی است و بیشتر آنها مؤمن نیستند و این ربک لهو الرحیم و به راستی پروردگار و پیروزمند مهربان است و ایذ نادا ربک موسا ان القوم الظالمین و بیاد بیاور هنگامی را که پروردگارت موسا را نداداد که به سوی قوم ستمکار برو. قوم فرعون، الا یتقون قوم فرعون، آیا آنها نمی ترسند؟ قال رب اینی اخاف ان یکذبون موسا گفت پروردگارا من می ترسم که مرا تقذیب کنند و یضیق صدری ولا ينطلق لساني لسانی فأرسل هارون و سینه تنگ گردد و زبانم باز نشود پس برادرم هارون را رسالت ده تا مرا یاری کند ولهم علی ذنب فأخاف ان یقتلون و آنها برگردن من ادعای گناهی دارند پس میترسم که مرا بکشند قال کلا خداوند فرمود چنین نیست پس شما هر دو با آیات ما بروید یقینا ما با شما شنوندگان هستیم فاتيا في فرعون فقولا انا رسول رب العالمين پس به نزد فرعون بروید و بگویید ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم ان ارسل معنا بني اسرائيل که بنی اسرائیل را با ما بفرست. قال ألم و فينا من فر گفت آیا ما تو را در کودکی نزد خود پرورش ندادیم و سالهای از عمرت را در میان ما نگذراندی و فعلت فعلت فعلت و انت من الكافرين. و بالاخره آن کارت را که نبایست انجام دادی انجام دادی و تو از ناسپاسانی قال فعلت ها اذا و من الضال موسا گفت من آن کار را آنگاه انجام دادم که من از بیخبران خبران بودم. فقررت منکم لمما خفتکم فوهبلی ربی حکما وجعلنی من المبسلین. پس چون از شما ترسیدم از شما فرار کردم آنگاه پروردگارم به من دانش و نبوت بخشید و مرا از پیام بران قرار داد و تلک نعمت تمنها علی انعبدت بني اسرائیل و آیا این نعمتیست که تو بر من منت می که بنی اسرائیل را برده خود ساخته ای؟ قال فرعون و ما رب العالمی فرو گفت پروردگار جهانیان چیست قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنین موسی گفت پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه چه میان آن دو است اگر اهل یقین هستید قال <تصفيق> لمن حوله ا لا تستمع فرآن به آنهایی که در اطرافش بودند گفت آیا نمیشه قال ربكم و رب آبائكم الاولين موسی گفت او پروردگار شما و پروردگار نیاکان پیشینی شماست قال این رسولكم الذي لمجنون آن گفت بی تردید پیام برتان که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون موسا گفت او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دو است اگر بینیدشید قال لئن اتخذت الهه غيري لاجعلنك من المسجونين فرآن گفت اگر معبودی جز من برگزینی البته تو را از زندانیان قرار خواهم داد قال اولو جئتك که بشیئی مبین موسا گفت حتی اگر معجزه روشنی برای تو آورده باشم قال فأتی به این کنت من الصادقین فیر آن گفت، پس اگر از راست گویانی ان راب یاور. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُبِينٌ پس موسا عصای خود را افکند که ناجحان ان اجدهایی آشکار شد. و نزع يَدَهُ فإذا هِيَ بِيَاضٌ النَّاظِرِ و دست خود را در گریبان فرو برد و بیرون آورد که ناگهان در برابر بینندگان سفید و روشان بود قال هذا فرعون به اشرافی که اطراف او بودند گفت بیگمان این مرد جادوگر دانایی است يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون او میخواهد با سهرش شما را از سرزمینتان بیرون کند پس شما چه نظر میدهید قالوا أرجه وأخاه وابعث في گفتند: کار او و برادرش را به تأخیر انداز و جمع آوری کنندگان را در همه شهرها بفرست. یأتو بکل ساحر علیم تا هر جادوگر ماهر و دانا را نزد تو آورند. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم پس سرانجام جادو برای بعدگاه روز معینی گرد آورده شدند و قیل للناس هل انتم مجتمعون و به مردم گفته شد آیا شما نیز جمع میشوید؟ لعلنا نتبع السحرات این کانو هم الغالبین تا اگر ساهران پیروز شدند ما از آنها پیروی کنیم فلما جاء السحرات قالو لفرعون این لنا لأجرا این کنا نحن الغالبين پس هنگامی که ساهران آمدند به فرعون گفتند اگر ما پیروز شویم آیا ما پاداشی خواهیم داشت. قال نعم و این من المقربین. گفت آری بیگمان آنگاه شما از مقربان خواهید بود. قال لهم موسا القوما انتم ملقون موسا به آنها گفت هرچه میخواهید بیفکنید بیفکنید فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا و, و بعزت فرعون انا نحن الغالبون پس آنها ریسمان ها و عصا خود را افکندند و گفتند به عزت فرعون قطعا ما پیروزیم موسی پس موسا عصایش را افکند ناگهان آنچه را به دروغ برساخته بودند بلعید. فألقی السحرت ساجدین پس ساهران سجد کنان به زمین افتادند قالوا آمننا برب العالمین گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم رب موسی و هارون پربردگار موسی و هارون قال امنتم له قبل أن آذَنَ لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين فير آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید مسلما او بزرگتر شماست که سهح را به شما یاد داده است پس به زودی خواهید دانست دستانتان و پاهایتان را به عکس یکدیگر قطع می کنم و همه شما را به دار میآویزم قالون اننا الى ربنا منقلبون گفتند باکی نیست ما به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم ان نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان ما امیدواریم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد که ما از نخستین ایمان آورندگان بودیم و او وحینا موسا موسی ان اسری بعبادی متبعون و به موسا وحی کردیم که شبان بندگانم را از مصر بیرون ببر بی گمان شما تعقیب می شوید فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ پس فرعان چون از ماجرا را آگاه کردید گردا نیرو را به شهرها فرستاد اِنَّهَا أُولَائِ لَشِرْذِمَةٌ قلیل. و گفت اینها گروهی اندک و ناچیز هستند و این هم لنا و اینها ما را به خشم آوردهاند و این و ما همگی آماده و بیدار هستیم و خراج جنات و عیون. پس آنها را از باغ ها و چشمه ها بیرون کردیم و کنوز و مقام کریم و نیز از گنج ها و منزلگاه نیکو و قصر های مجلل بیرون راندیم كذلك و اورثناها بنی اسرائیل. آری این چونین کردیم و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم فأتبعوهم مشرقین. پس آنها صبح گاهان به هنگام طلوع آفتاب به تعقیبشان پرداختند فلما تری الجمعان قال اصحاب موسى إنا لمدركون پس چون دو گروه یکدیگر را دیدند یاران موسی گفتند یقینا ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم کلا انما معي <تصفيق> ربي سيهدين موسی گفت چنین نیست بیگمان پروردگارم با من است به زودی مرا هدایت خواهد کرد فاوحینا الى موسى أن يضرب بعصاك البحر فَنفلق فكان كل فرق كالطود العظیم پس به موسی وحی کردیم عصایت به دریا بزن آنگاه دریا شکافته شد پس هر بخشی از آن همچون کوه عظیمی شد واذلفنا ثم الاخر و دیگران را نیز به آنجا نزدیک ساختیم و انجینا و من معه اجمعین و موسی و همراهانش را همگی نجات دادیم ثم اغرقنا الخرین سپس دیگران را غرق کردیم این بیگمان در این ماجرا نشان ای روشن است و بیشتر آنها مؤمن نبودند و ان ربک العزيز الرحیم و بی ترید پروردگار پیروزمند مهربان است واتلو عَلَيْهِمْ نبأ إبراهم و خبر ابراهیم را بر آنها بخان اذ قال لأبیه وقومه ما تعبدون هنگامی که به پدر و قومش گفت چه چیز را میپرستید قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين گفتند بطهایی را می پرستیم و پیوسته برای عبادت آنها معتکف هستیم قال هل یسمعونکم تدعون ابراهیم گفت آیا هنگامی که آنها را می خانید صدای شما را می شنوند او او یضرون یا سود و زیانی به شما میرسانند قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون گفتند نه بلکه ما نیاکان خود را یافتیم که چنین میکردند قال افر ما كنتم ابراهیم گفت آیا دیدید چیزهایی را که پیوسته عبادت می کردید؟ و شما و نیاکان پیشین شما إلا رب العالمين. پس همه آنها دشمن من هستند جس پروردگار جهانیان الذي فهو همان کسی که مرا آفرید پس او مرا هدایت میکند کند. و هو و, و کسی که او به من غذا میدهد و سیراب مینماید نماید. و اذا مرضت فهو و اگر مریضت و هنگامی که بیمار شوم پس او مرا شفا می دهد وال او میتونی و کسی که مرا می میراد سپس زنده می کند وال الذي اب معی او فری خااطمیتی اومدی؟ و کسی که امیدوارم گناهانم را در روز جزا برایم ببخشد رب و پروردگارا به من دانش و حکمت ببخش و مرا به صالحان ملحق کن. و جعلنی لسان صدق فی الاخرین و برای من در میان آیندگان آوازی نیک قرار بده و جعلنی من ورثت جنت نعیم و مرا از وارثان بهشت پر نعمت به گردان و نه اونکنین بالی و پدرم را بیامرز بیگمان او از گمراهان بود وا تخزینی و در روزی که همه مردم برانگیخته میشوند مرا رسوا و شرمنده مکان یا اومللایم. ين... ولا بنون. روزی که مال و فرزندان سودی نبخشد اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم. مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خداوند بیاید وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيمِ و در آن روز بهشت برای پرهیزگاران نزدیک آورده شود و, و دوزخ برای گمراهان آشکار کنند و و به آنها گفته می شود کجا هستند آنچه که به جای خدا پرستش می کردید من دون الله هل ینصرونکم او ینتصرون آیا آنها شما را یاری می کنند یا خود انتقام می گیرند و کبکی بو ها هم و پس آنها و گمراهان برو در آن افکنده میشوند؟ و جنود و نیز همه لشکریان ابلیس قالوا وهم هم فیها یختصمون آنها در آنجا در حالی که با یک دیگر مخاسمه می کنند گویند تالله این کنا لفی ضلال به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم. اذن بر چون شما را با پروردگار جهانیان برابر میدانستیم و ما اضلنا المجرمون و کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد و ما لنا من شافعین پس اکنون هیچ شفاعت کنندگانی برای ما نیست ولا لا صدیق حمیم و نه هیچ دوست مخلص و مهربانی فلو أن لنا کرتا فنکون من المؤمنین پس ای کاش بار دیگر به دنیا بازگردیم تا از مؤمنان باشیم این فی لآیه و ما كان اکثرهم مؤمنین بیگمان در این ماجرا نشانهای روشن است و بیشتر آنها مؤمن نبودند وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ فَبِتَرْدِيدِ پروردگار تو پیروز مهربان است كذبت قوم, قوم نوح المرسلين پیام بران را تغذیب کردند اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ان برادرشان نوح به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید این لیکم رسول امین مسلما من برای شما پیام بری امین هستم فاتقوا الله واطيعون پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و من من اجر ان اجری الا علی رب العالمین بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است الله و پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید قالو انؤمن لك واتبعك الارذلون گفتند آیا به تو ایمان بیاوریم در حالی که فرومایگان از تو پیروی کرده اند؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح گفت من نمی‌دونم آنها چه کارها کرده اند این حسابهم الا على ربي لو تشعرون؟ اگر می‌فهمید حساب آنها تنها با پروردگار من است وما انا بطارد المؤمنين و من هرگز مؤمنان را ترد نخواهم کرد این انا إلا نذیر مبین من جز بیم دهنده ای آشکار نیستم قالو لئن لم تنتهیانوح لتکونن من المرجومین گفتند ای نوح اگر از دعوتت دست بر نداری حتماً سنگ سار خواهی شد قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ نوح گفت پروردگارا همانا قوم من مرا تقزیب کردند فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعْيَ مِنَ, من الْمُؤْمِنِينَ پس میان من و آنها داوری کن و مرا و مؤمنانی را که با من هستند نجات بده فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون پس او و کسانی را که همراه او بودند در آن کشتی پر و انباشت نجات دادیم. ثم اغرقنا بعد الباقین سپس بقیه را غرق کردیم این فی ذالک لآیه و ما کان مؤمنین بیگمان در این ماجرا شان ایروشن است و بیشتر آنها مؤمن نبودند و این ربک لهو العزیز الرحیم بی تردید پربارد تو پیروز مهربان است. قوم عاد نیست پیام بران خدا را تکذیب کردند. این قال لهم اخوهم الا تتقون. هنگامی که برادرشان هود به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین. براستی من برای شما پیام بری امین هستم فاتقوا الله و اطیعون. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید وما ما اسألكم علیه من اجر این اجریه الا على رب العالمین و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. مزد من تنها بر احده پروردگار جهانیان است. تعبثون. آیا بر هر مکان مرتفعی ای از روی هوا و حوص و بیهوده میسازید؟ و تتخیدون مصانع لعلكم تخلدون و قصرها و قلعه ها محکم و استوار بنا می کنید گویی که در دنیا جاودانه میمانید مانید و اذا بقشتم بقشتم و چون کسی را کیفر دهید همچون جباران کیفر می دهید. الله پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید بما و از کسی بترسید که شما را به آنچه میدانید مدد کرده است امدکن بی انعام و بنی شما را به چهار پایان و فرزندان مدد و یاری فرموده است و جنت و عیون و همچنین به باقها و چشمه ها اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم همانا من از عذاب روزی بزرگ بر شما میترسم. قالوا سواء علينا او عذت لم تكن من الواعظين گفتند برای ما یکسان است چه ما را پند دهی یا پند ندهی إن هذا إلا خلق الأولين این جز همان ربش پیشین نیست و ما نحن بمعذبین و ما هرگز عذاب نخواهیم شد فکذبوه فأهلکناهم این نفی ذالک لآیه وما كان کان اکثرهم مؤمنین. پس او را کردند در نتیجه ما آنها را حلاک کردیم بیگمان در این ماجرا نشانه است و بیشتر آنها مؤمن نبودند و این ربک لهو العزیز الرحیم و بی تردید تو پیروز مند مهربان است. کذبت ثمود المرسلی قوم سمود پیام بران خدا را تجزیب کردند. اذ قال لهم اخوهم تتقون. <تصفيق> <تصفيق> هنگامی که برادرشان صالح به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟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 و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم مزد من تنها بر احده پروردگار جهانیان است فی ما ها هنا آیا می پندارید که شما را در اینجا ایمن رها می کنند؟ فی جنات و عیون در این باق ها و چشمه ها و در این زراعت و نخل هایی که شکوفه هایش نرم و رسیده است و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین و شادمان از کوها خانههایی میتراشید می فاتقوا الله پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و لا تطیعوا امر المسرفین و فرمان اسراف کارن را اطاعت نکنید الَّذِينَ يفسدون في الْأَرْضِ ولا يُصْلِحُونَ همان کسانی که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند قالو انما انت من گفتند ای صالح جز این نیست که تو از جادو شدگانی انت مثلنا جز بشری همانند ما نیستی پس اگر از راست گویانی نشانه ای بیاور قال هذه ناقه لها شرب ولکن شرب يوم معلوم صالح گفت این ماده شوتری است که برای او یک نوبت آب خوردن و برای شما نیز نوبت روز معینی است و تمسوها این عذاب عظیم و کمترین آزاری به آن نرسانید که عذاب روزی بزرگ شما را فرو می گیرد فعقروها فاصبحون ندمین پس آن را پی کردند. آنگاه از کرده آنگاه ازکرده قد پشیمان شدند فاخذهم العذاب ان في ذلک آیه و ما کان اکثرهم پس عذاب الهی آنها را فرو گرفت بیگمان در این ماجرا نشانه ایست و بیشتر آنها مؤمن نبودند و ان ربک لهوالعزیز و بی پروردگار تو پیروزمند مهربان است کذبت <تصفيق> قوم لوط المرسلین قوم لوط پیامبران خدا را تکذیب کردند اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون هنگامی که برادرشان لوط به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید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 و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمیطلبم مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است اتأتون الذکران من العالمین آیا در میان جهانیان شما به سراغ مردان میروید وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. و همسرانی که خدا برای شما آفریده است رها میکنید کنید بلکه شما قومی متجاوز هستید قالوا لئن لم تنتهیالوق لتكونن من المخرجین گفتند ایلوت اگر دست بر نداری یقینا از اخراج شدگان خواهی بود قال اینی لعملكم من القالین لود گفت من دشمن سرسخت عمل شما هستم رب نجنی و اهلی مما یعملون پروردگارا من و خانواده امرا از آقبت آنچه اینها انجام می دهند نجات بده فنجیناه و اهله اجمعین پس او و خانواده اش را همگی نجات دادیم الا عجوزا فی مگر پیرزنی که در میان بازماندگان بود ثم دم مدمرنا الاخرين سپس دیگران را نابود ساختیم وامطرنا عليهم مطرا فسااء مطر المنذرين و بر آنها بارانی از سنگ بارانیدیم پس باران بیم داده شدهگان چه بد بود ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ بیگمان در این ماجرا نشانه ایست و بیشتر آنها مؤمن نبودند وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ و بی ترید پروردگار تو پیروزمند مهربان است كذب <تصفيق> أصحاب الایکت المرسلین اصحاب ایکه پیام بران خدا را تقذیب کردند القال لهم شعیب ألا تتقون هنگامی که شعیب به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید اینی لكم رسول امين همانا من برای شما پیام بری امین هستم. فتقوا الله و پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. و من من اجر، این اجر الا على رب العالمين. و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمیطلبم. من تنها بر احده پروردگار جهانیان است اوفو من پیمان را تمام بدهید و از کاهندگان و کمفروشان نباشید وزینو بالقصفاس المستقیم و با ترازوی درست وزن کنید ولا تبخسوا الناس أشیاءهم ولا تعثوا فی الأرض مفسدین و چیزهای مردم را کم ندهید و در زمین به فساد نکوشید. واتقوا الذی خلقكم والجبلة الاولین و از کسیکه شما و آفریدگان نخستین را آفرید بترسید قالوا انما أنت من المسحرین گفتند ای شعیب جز این نیست كه تو از جادو شدگانی وما أنت إلا بشر مثلنا وإن تو جز بشری همانند ما نیستی و تو را از دروغ گویان میپنداریم فأسقط علینا كسفا من السماء إن كنت من الصادقین پس اگر از راستگویانی ای از آسمان را بر سر ما بینداز قال ربی اعلم بما تعملون شعیب گفت پروردگارم به آن چه دهید داناتر است فکذبوه فأخذهم عذاب یوم الظله انه کان عذاب یوم عظیم پس او را تکذیب کردند آنگاه عذاب روز سایه آنها را فرو گرفت بیگمان آن عذاب روز بزرگی بود این فی ذالک و ما بیگمان در این ماجرا نشانه ایست و بیشتر آنها مؤمن نبودند و این ربک لهو العزیز الرحیم و بی تردید پروردگارت و پیروزمند مهربان است و اینه له تنزل رب العالمين. و حمایت این قرآن نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. نزل به روح الامین روح الامین آن را فرود آورده است. علی قلب کلیت من المذیرین بر قلب تو تا از هشدار دهندگان باشی. بی آن را به زبان عربی روشن نازل کرد و لفی زبر توصیف آن در کتاب های پیشین یا نیز آمده است. اولم يكن لهم آیتاً این يعلمه علماء بنی اسرائیل آیا همین نشانه برای آنها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل از آن آگاهند ولو نزلناه على بعض الاعجمین و اگر آن را بر بعضی از عجمیان نازل می کردیم فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانوا به مؤمنین. پس او آن را برایشان میخواند به آن ایمان نمی آوردند کَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ آره آن تکذیب را در دلهای مجرمان درآوردیم. لا یؤمنون به حتی یره العذاب الالیم به آن ایمان نمی آورند تا عذاب دردناک را با چشم خود ببینند فیأتیه هم بغتتا و هم لا یشعرون پس ناگهان در حالی که بیخبرند به سراغ آنها میآید. فقول هل نحنمونورون آنگاه میگویند آیا مهلتی به ما داده خواهد شد ف عذاابنا يستجنون آیا برای عذاب ما شتاب می کنند افرائيت م آیا دیدی که اگر سالیانی آنها را از این زندگی دنیا بهرهمند سازیم؟ ما كانوا سپس آنچه که به آنها وعده داده شده است به سراغشان بیاید ما این بهره از دنیا سودی برای آنها نخواهد داشت و من الا به هیچ قریه ای را حلاک نکردیم مگر اینکه هشدار دهندگانی از پیام بران داشتند و ما برای پن دادن و ما هرگز ستمکار نبودیم و, ما تنزلت به و شیطانها هرگز این قرآن را نازل نکرده اند وما ینبغی لهم وما يستطيعون. و برای آنها سزاوار نیست و نمیتوانند انهم عن السمع لمعذولون بیگمان آنها از شنیدن وحی و استراق سمع کنارند. فلا تدعو مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. پس ای پیامبر هیچ معبودی را با الله مخان که از عذاب شدگان خواهی بود و انذر عشیرتک و خیشاوندان نزدیکت را هشدار بده وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ و بال رحمت و فروتنی خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَرِي اُمِّن مَا تَعْمَلُونَ پس اگر از فرمان تو سرپیچی کردند بگو همانا من از آنچه انجام می دهید بیزارم و توکل و بر خداوند پیروز مهربان توکل کن الَّذی تقوم همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی می بیند. وتقلبك في الساجدين. و نیز حرکت و نشست و برخاست تو را میان سجده کنندگان می این نه هو السميع العليم. همانا او شنوای داناست هل انبئكم على من تنزل الشياطين آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل میشوند؟ تنزل علی كل افاک اثیم بر هر دروغ گوی گناهکار نازل میگردند. یقولون السمع کاذبون به شیاطین گوش فرامی دهند و بیشترشان دروغگو هستند. والشعراء یتبعهم الغاوون و, و شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنها پیروی میکنند الم تر أنهم فی كل وادی یهیمون آیا ندیدی که آنها در هر وادیای سرگشته و حیران هستند و يقولون یقولون ما لا یفعلون. و بیگمان آنها چیزی میگویند که خود به آن عمل نمیکنند. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و خدا را بسیار یاد کردند و بعد از آن که ستم دیدند انتقام گرفتند و با شعر خود از اسلام و مسلمین دفاع نمودند و کسانی که ستم کردند به زودی خواهند دانست به چه بازگشتگاهی باز می گردند قاسیم تلک آیات القرآن و کتاب مبین تا سین این آیات قرآن و كتاب مبین است. هداو و بشرال المؤمنين که هدایت و بشارت برای مؤمنان است. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخره هم, هم يقنون همان کسانی که نماز را بر پا می‌دارند و زکات را ادا می‌کنند و آنها به آخرت یقین دارند این الذين لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمون بیگمان کسانی که به آخرت ایمان نمی آبرند. اعمالشان را برای آنها زینت داده ایم پس آنها سرگردان میشوند اولئك الذین لهم سوء العذاب وهم فی هم الاخسرون آنها کسانی هستند که عذاب بد و دردناک برایشان است و آنها در آخرت زیانکارترینند. و اینکل تلق القرآن من لدن حکیم علیم و تو این قرآن را از سوی خداوند حکیم دانا دریافت میداری إذ قال موسى لأهله اینی آنست نارا سآتيكم ساعتتیکن منها بخبر او آتيكم بشهاب قبس لعلكم تتسقالون به یاد بیاور هنگامی را که موسا به خانواده خود گفت بیستید بی همانا من آتشی از دور دیده ام به زودی خبری از آن برای شما میآورم. یا شعله آتشی از آن می آورم تا گرم شوید فلما جاءها نودی انبوری که من فی النار و حولها و سبحان الله رب العالمین پس چون به آن آتش رسید نداداده شد که مبارک باد کسی که در آتش است. و کسی که پیرامون آن است و منزه است خداوندی که پروردگار جهانیان است یا موسی اینهو الله العزیز الحکیم ای موسی همانا من خداوند پیروزمند و حکیم هستم <sitä viris miniature> <ano pe streaming> <Republicans> و القعصاک فَلَمَّا رَعَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانُّ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ وَأَصَایَتْ <تصفيق> رَا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 إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء إن فإني غفور الرحيم. مگر کسی کسه ستم کند پس توبه کند و بدی را به نیکی تبدیل نماید پس بیگمان من آمرزنده مهربان هستم وأدخل يدك في جيبك تخرج که سفید و در بی بیعیب بیرون بیاید این معجزه در زمری معجزات نهگانه است به سوی فرعون و قومش برو که آنها قومی فاسقند فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتم قالو هذا سحر مبین هست چون آیات روشن و کاملا آشکار ما به سراغ آنها آمد گفتند این جادویی آشکار است و جحدو بها و استیقنتها انفسهم ظلموا و علوه. فانظر کیف کان عاقبت المفسدين؟ و آن را از روی ستم و سرکشی انکار کردند در حالی که دلهایشان به آن یقین داشت پس به عاقبت مفسدان چگونه بود؟ و لقد آتینا داود و سليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده و به راستی به و سلیمان دانش عظیمی دادیم و آنان گفتند ستایش از آن خدای است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود برتری بخشید و ورث سلیمان داوود و گفت: یا أيه الناس علمنا منطق الطير و اوتنا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين. با سلیمان وارث داوود شد و گفت. ای مردم، زبان پرندگان به ما آموخته و از هر چیز به ما عطا شده، بی تردید این فضل آشکاری است و لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون و برای سلیمان لشکریانش از جن و انس و پرندگان گرد آورده شدند آنگاه نگاه داشته شدند تا همه آنها به یک دیگر بپیوندند. حتی اذا أتوا على واد نمل قالت نملة يا النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمكم سليمان لا يحطمنكم سلیمان و و لا يشعون. بعد حرکت کردند تا هنگامی که به وادی مورچگان رسیدند مورچه ای گفت ای مورچگان بلانه های خود بروید تا سلیمان بلشکریانش شما را پایمال نکنند در حالی که نمی فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي و ادخلنی برحمت في پس سلیمان از سخن آن مورچه تبسمی کرد و خندید گفت پروردگارا به من توفیق ده تا شکر نعمتهایی را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشت ای به جای آورم و توفیق اتا فرما تا کارهای شایست ای که تا خوشنود شوی انجام دهم و مرا به رحمت خود در زمری بندگان صالحت در آور و تفقدت غیر فقال مالی لا ارالهدهد امکان من الغائبین و سلیمان از حال پرندگان جویا شد و گفت مرا شده است که هدهد را نمی بینم یا اینکه او از قایبان است لأعذبنه عذابا شدیدن اول اذبحنه اول یأتینی بسلطان مبین قطعا او را به کیفر شدید کیفر خواهم داد یا او رازه به خواهم کرد یا باید دلیلی روشن برای قیبتش برای من بیاورد فمکت غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به و جئت من سبئ بنبئ پس درنگش چندان طول نکشید که هدهد آمد آنگاه گفت من به چیزی دست یافتم ام که تو به آن دست نیافده ای و از سرزمین سبا برایت خبر قطعی آوردم. وجدتم رأتا تملکهم و من كل شیئ و عرش عظیم من زنی را یافتم که بر آنها فرمن ربائی می و به او از هر گونه نعمتی داده شده است و تخت عظیمی دارد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 او و قامش را دیدم که به جای خدا برای خورشید سجده می کنند و شیطان اعمال آنها را در نظرشان آراسته پس آنها را از راه خدا باز داشته است از این رو آنها هدایت نمی شوند اللهست جول لله الذي خورری جخوااب افسمتی السماوات والارض علم ما تخفون وما تعلنون چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه را در آسمانها و زمین پنهان است بیرون میآورد و آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می کنید همه میداند الله لا اله الا هو رب العرش العظم خداوند ی که جز او معبودی نیست پروردگار عرش عظیم است قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین سلیمان گفت اکنون خواهیم دید که آیا راست گفته ای یا از دروغگویان گویان هستی اذهب هب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون این نامه مرا ببر و بر آنها بیفکن سپس از آنها روی بگردان پس در گوش ای توقف کن بنگر که چه جواب میدهند. قالت يا كتاب سبا گفت ای بزرگان به راستی نامی پرارزشی به سوی من افکنده شده. اینه من سلیمان و اینه بسم الله الرحمن الرحیم همانا آن نام از سلیمان است و چنین است. به نام خداوند بخشنده مهربان تعلو علي بر من برتری و وتسليم شده نزد من بياید قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ملکی گفت ای بزرگان در کار من رأی دهید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور و مشورت شما تصمیم نگرفته ام قالو نحن اولو قوتی و اولو بأس شدید و الامر ایلیک فانظری ماذا تأمری گفتند ما دارای نیروی کافی و جنگ جویان با قدرتی هستیم و اختیار با توست پس بنگر که چه فرمان می دهی؟ قالت این الملوک اذا دخلوا قریت افسدوها و جعلو اعزت اهلها اذله و كذلك يفعلون. گفت بی تردید پادشاهان هنگامی که وارد قریه ای شوند آن را ویران و تباه سازند و عزیزانش را ذلیل می کنند و این گونه رفتار می کنند و ایننی مسیلت اییمبیادیتیم فنغراتون بیمایمرج بی مرسون و هماننا من هدی برای آنها میفرستم پس می نگرم که فرستاادگان چه جواب میآورن؟ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ پس چون فرستادی ملک نزد سلیمان آمد سلیمان گفت آیا می خواهید مرا با مال یاری کنید آنچه خدا به من داده بهتر است از آنچه به شما داده است بلکه شما به هدیتان شادمان می شوید. ارجع به سوی بجنود الله قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجن منها وهم صاغرون پس البته با به سوی آنها خواهیم آمد که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و بی تردید آنها را از آن سرزمین با ذلت و خاری بیرون می کنیم قال یا ایوها الملع أيكم یأتینی بعرشها قبل أن یأتونی مسلمین سلیمان گفت ای بزرگان کدام یک از شما تخت او را برای من میآورد پیش از آن که تسلیم شده نزد من آیند قال عفریت من الجن أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك و عليه لقوي افریتی از جن گفت من آن را نزد تو می آورم پیش از آنکه از جایت برخیزی و همانا من بر آن توانای امین هستم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتیك به قبل أن یرتد إلیك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قَالَ هذا من فضل ربي قال: هذا من فضل ربي. هذا ليبلوني. آشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. و من کفر ربی غنی کسی که دانشی از کتاب الهی داشت گفت من پیش از آنکه چشم بر همزنی آن را نزد تو می آورم پس چون سلیمان آن تخت را نزد خود مستقر دید گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا شکر او را به جای می آورم یا ناسپاسی می کنم؟ پس هر که شکر کند تنها به نفع خود شکر می کند و هر که ناسپاسی کند پس به زیان خود نموده است؟ بیگمان پروردگار من بیناز و کریم است. قال ن لها عرشها عابشغ تحتدید ام تتكون من الذي لایتتدون س گفت: تخت او را برایش ناشناس کنید تا ببینیم آیا آن را باز میشناسد یا از آنهاست که باز نتوانند شناخت. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكْ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ پس چون ملکه سبا آمد به او گفته شد آیا تخت تو اینگونه است؟ گفت گویی همان است و ما پیش از این هم به قدرت خداوند و حقانیت سلیمان دانش یافته بوده ایم و مسلمان و بردار بودیم و صدها ما تعبد من دون اینها کاند من قوم کافرين. و آنچه به جای خدا میپرستید او را از ایمان به خدا باز داشته بود بیگمان او از قوم کافران بود قیل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجتا و كشفت عن ساقیها قال اینهو صرح ممرد من قواری قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمی. به او گفته شد به صحن داخل شو پس هنگامی که آن را دید پنداشت که آب عمیقی است و دو ساق پای خود را برهنه کرد تا از آب بگذرد سلیمان گفت این آب نیست، این صحنی صاف از آبگینه است، ملک گفت پروردگارا من به خود ستم کردم و اینک با سلیمان برای خداوند پروردگار جهانیان تسلیم شدم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اللَّهَ فَإِذَا فا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ و به سوی قَوْمِ سمود برادرشان صالح را فرستادیم که خدای یگانه را بپرستید آنگاه آنها دو گروه شدند که به مخاصمه پرداختند قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون صالح گفت ای قوم من چرا پیش از نیکی بربدی می میشتابید و به جای رحمت عذاب الهی را می چرا از خداوند آمرزش نمی خواهید تا شاید مورد رحمت قرار گیرید قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون گفتند ما به تو و کسانی که با تو هستند فال بد زده این. صالح گفت فال بد شما نزد خداست بلکه شما گروهی هستید که مورد آزمایش قرار می‌گیرید و فی رهط یفسدون فی و در آن شهر هجر نه نفر بودند که در زمین فساد می‌کردند و اصلاح نمی‌کردند قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه و أهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهله وإننا لصادقون گفتند به خدا سوگند یاد کنید که حتما بر او و خانواده اش شبیخون میزنیم و آنها را میکشیم سپس به ولی دم او میگوییم ما هنگام حلاکت و نابودی خانواده اش هرگز حاضر نبودیم و از آنها خبر نداریم و بیگمان ما راستگو هستیم و مکرون مکرون و مکرنا مکرون و هم و آنها برای قتل صالح و پیروانش هیله و نیرنگی به کار بردند و ما نیز هیله و تدبیری برای حلاک آنها و نجات صالح و پیروانش اندیشیدیم در حالی که آنها نمیدانستند. فانظر كیف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعین پس بنگر عاقبت نیرنگشان چه شد ما آنها و قومشان همهگی را نابود کردیم فتلك بیوتهم خاویة بما ظلموه في ذلك لقوم پس این خانه های آنهاست که به سزای ستمی که میکردند خالی مانده است. بیگمان در این ماجرا نشانه ای است برای گروهی که میدانند، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ و کسانی را که ایمان آورده و پرهیز بودند نجات دادیم وَلُوطٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ و لوت را یاد آور هنگامی که به قومش گفت آیا کار بسیار زشت مرتکب می شوید در حالی که خود سرانجام و زشتی آن را میبینید بینید لتأتون الرجال من دون بل انتم قوم تجهلون آیا شما به جای زنان از روی شهوت سراغ مردان می روید بلکه شما مردمی نادان هستید